شریعت کیسود جلده دوم فصل یافده فرهنگ اکنکاش تا به این آموزش های ماهانتا استاد حق در قید حیات یک حلقه درونی را تشکیل میدهند که از بالاترین طبقات هستی نیز قابل مشاهده است گروه هم وجود دارند که در جوامع مختلف جهان به صورت مجامعی کوچک فعال می باشند اما جامعه اک در کالبد درونی جوامع و ملت ها بوده و در طبقات ماورای این مرتبه فیزیکی قرار دارد این فرهنگ در درون فرهنگ است بدین این معنا که به عنوان یک نیروی درونی از مناسبات فردی یا جمعی در عالم بیرون استفاده می کند تا تغییراتی را در محیطهای مختلف به وجود آورد پیرو حقیقی اک به هیچ نحو در سقلای اصلاحات بیرونی نیست او حقیقت را می جوید و همین کندوکاو خود به خود تأثیرات گذافی بر جامعه می گذارد. پس ماهان تا استاد حق در قید حیات نه به دنبال جذب پیروان بیشتر می باشد و نه اهمیتی به تغییرات بیرونی می دهد. و همچنین علاقه ای هم به اصلاحات سیاسی ندارد اما به هر کجا قدم می دارد تغییرات شگرفی در عرضی اصلاحات سیاسی و اجتماعی روی می دهد این وقایع از طریق کانال های درونی صورت می گیرند. این تحولات نیازی به موعظه و خطابه ندارد فقط پایستی اجازه داد که اک آزادانه به جهان بیرون جادی شده و فراز و فرودهای معنوی و انسانی را باعث شود. اگر چلا خود را تسلیم حکمت اک کرده باشد این فعل و این فعلات برایش بدیهی است و به راحتی آنها را تشخیص میدهد حالان که دیگران نمیتوانند چونی بینشی داشته باشند او شک و شبههی به خود راه نمی دهد زیرا ماهانتا همبار حقیقت را به روشی عام فهم باز می نماید به طوری که حتی ساده اندیشترین افراد نیز آن را درک می کند فرهنگ ایک انکار طریق و آموزش عک می باشد این پدیده بی است همین که اک پیروانش را لمس می کند همه آنها با هم متحد می شوند. آنکه که تلاشی برای این اتحاد انجام دهند زیرا ایشان به زبانی مشترک تکلم کرده و همدل هستند مهمترین جزئی که آنها را به دور یکدیگر جمع می کند اشتیاق و عشق است که حضور تکتک آنها را در امور مروی اکنکار تسبیت می کند آنها تشخیص می دهند که نیازی به اعمال خشونت و تندی و گلایه ندارند زیرا این کیفیات فیات زاییده کل بوده و در میان نفسانی از پنجگانه ذهن تنیده شدند و هیچ کدام متعلق به چلای اک نمی باشند جامعه اک بین المللی و بین سیارهی است آن در بین تمامی طبقات معنوی و همچنین در میان همه اقالیم می روانی نیز فعال است با وجود آن که این جامعه در بیرون وجود دارد اما اعضای آن با یکدیگر ارتباطی درونی دارند که در طبقات مرعی دیده نمی شود. این انجمن در سر سر جهانهای خدا پخش است. برخی در درون این انجمن زندگی کرده و برخی به تنهایی فعالیت می کنند. اما یک خط ارتباطی نامرعی همه آنها را به یکدیگر متصل می سازد. این ارتباطی دو طرفه است که که آنها اجازه اختلاط و مکالمات درونی را می واصلین حلقه پنجم مهدیسها در رگه های معنوی عمیقی با یکدیگر متحد می باشند که به عنوان یکی برای همه و همه برای یکی عمل می کنند. آنها در وطن نیروی عظیم معنوی به سر می برند که تماما در تعلق ایشان است. به آنها برادران برگ نیز گفته می شود. این عنوان اهمیتی جز از آن چه که در سطح دیده می شود دارد. آنها در عدد کم تعداد هستند اما همین که کسی عضو این حلقه کوچک ولی گران پایه می شود، همه ی جان در کار آن می نهاد و هرگز از آن بیرون نمی رود. چرا که هدف اصلیش امداد به سایر جهانیان است او بایستی همیشه آماده خدمت به کسانی باشد که از بخت و اقبال نیک او برخوردار نبودند انجمن اکیست مختص واصلین است آنها می توانند از طریق مجاری درونی با یکدیگر تماس گرفته و گفتگو نمایند. این جامعه درونی به ندرت بر کسانی که پارا پاراسایکولوژی معلمین روانی و متافیزیسیان ها را تمرین می کنند شناخته می شود این شبکه است که فقط بر آنان که واصل شده و فهمیدند که از قماش تمرینات معنوی است معلوم می‌گردند علت شکست اکثریت کسانی که با وجود گرفتن دیسکورس های یکان کار نمی‌توانند سفر روح کرده اما دیگران در تشکل بهشتی ارتباط درونی برقرار سازند فقط به خاطر آن است که فیشن انضباطی ندارند این انضباط برای همه کسانی که به جامعه اک تعلق دارند از اهمیتی حیاتی برخوردار است آنان که تمرینات معنوی دیسکورس ها را انجام داده و به مواد مکتوبات اک عمل نمایند در درون و بیرون نتایج آن را میبینند آنان که اصاره حق را ما بین وقت دوون تا پنجم نوشیده باشند می‌دانند که آن با ازبر کردن ریاضت و الزام به سکوت مطلق کسب نمی شود هیچ کس تاکنون کنون رمزراز را با ایسکا بر این تمرینات کشف نکرده است حتی اگر خودش را با این تمرینات خسته هم کرده باشد باز هم توفیقی نمی فقط کسانی که وارد اک شده و درجات بالای روشن روشنایی را از ماهانتا استاد حق در قید حیات کسب کرده باشند قادر به ورود به این حلقه مقدس بهشتی می شوند. راز ورود به این جامعه پاک تسلیم و گردن نهادن به اوامر ماهانتا استاد حق در قید حیات است با واگذار کردن و سپردن خیش به او فرد فاتح جهانهای بهشتی میگردد دیاری که اشراق ماهانتا در آن مقیمند فنابراین رمز ورودی عبارت از تسلیم داوطلبانه و وقت به می باشد پس بر تمامی کسانی که صدای تقرب به ماهانتا استاد حق در قید حیات را در سر دارند واجب میآید که تسلیم را به همین گونه پیش سازند. برای همه آسان نیست که از وطفاسته های نفسانی بگریزند بسیاری دوچار این و ابتضال شده و هیچگاه ازن ورود به جامعه اکیستی جهانهای بالا را نمیگیرند. اما چنانچه فرد ماهان تا استاد حق در غیر حیات را بیابد زندگی را هنرمندانه پشت سر نهاده و می‌تواند در بین یاران یک دل خود زندگی کند اما اگر فردی تحصیل کرده را به عنوان گروب پذیرد در پیروی از او به خرابات منحرف شده و در مبانی ایدئولوژیک اصلیر می گردند تا این تنها وقت خود را هدر میدهند و هرگز نمیتوانند از بعد مرگ و تولد برهند. ایشان باید یوای گروه کامل یعنی ماهانها را پیدا کنند. حتی اگر در این راه کشته شوند و اینکه اشتیاقی عمیق و حقیقی داشته باشند اصلا نباید دلناگیران باشند زیرا همین اشتیاق سوزان برای یافتن مهانتا استاد حق در غیر حیات این پرستش سوگماد است و آن به طور قطع در زمان مقتضی خودش را بر تمامی ره در شکل مهانتا استاد حق در غیر حیات آشکار خواهد کرد مایع تصف است در این روزگار مردم به جای توکل به عک به هیچ سند مستندی در پی آموزش‌های غلط و اصولی روان می‌شوند کل این دنیا را آنچنان زیرتانه تراهی تر نموده است که انسان‌ها به راحتی بر آنچه که هماهنگ و مقاصدشان باشد معتقد می‌شوند اما آنها به جای اینکه به ماهانتا استاد حق درید حیات آن چشمه معرفت ایمان بیاورند از او طلب معجزه می‌کنند ایشان قربانیان کل هستند زیرا و چیزهایی اعتقاد می که پیروان کل به هیچ سندی آن را به خود ایشان میدهند ولی همینان برای ایمان خود از ماهانتا سند و معجزه میخواهند. خواهند جهل به حدی در میان نجاد بشاشایی است که عده کثیری به توی پیوستن به نظامهای به اصطلاح الهی ترغیب می شوند و خرمن عمر خود را در گوش سپردن به فرهیختگان محروم از تجربیات حقیقی میسوزانند به جای پیوستن به چنین نظامهایی آنها می بایستی دل به ماهانتا استاد حق در قید حیات میدادند و وقت گرانمایه خیش را در خدمت او صرف میکردند از اینجا به آنها آموزش داده میشود که تمرینات درونی معنوی را انجام داده و به معنای حقیقی کلمه خالص شدند و به عوض اصلاف زمان خیش نهایتاً بتوانند به آشیان جان جامعه هناردی در آتمالوک ناهیه پنجم برسند هیچ کس نمیتواند با پیروی از معلمین و اساتید کازد از چرخه مرگ و تولد بگریزد این مطلوب حتی با پیروی از برهم خداوندگار منطقه ذهن و مؤسس عدیان اصولی در جهانهای پایین نیز مویستر نمیگردد اما حقیقت این است که فرد خودش هم نمیتواند به تنهایی چرخی تناسخ را پشت گذارد. به خصوص در اصل حاضر که اکثریت این معلمین دروغین فاضلان تحصیل کرده می باشند. نه معلمین و اساتید حقیقی و شرخت هرگز استاد حقیقی را یابد. تا اینکه که مهانتا استاد حق در قید حیات را ملاقات می کند پس همگان در چرخه رفتن و آمدن باقی خواهند ماند زیرا استاد حق در قید حیات تنها مرجعی است که می تواند مردم را از باقی ماندن در این چرخه نجات داده و به توی خانه حقیقیشان هدایت نمایند. جامعه معنوی اکیستها ها است که قلوب تمامی پیروان اک در آن و به خاطر آن می تپد. در این حلقه است که ایشان می از فواصل دور با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و عشق و حکمت و شعف را با هم شریک شوند پیروان سایر اساتید و معلمین مکاتب اسرار ماوراء طبیعه و گروه‌های دینی از چنین قابلیتی محرومند این نقطه ضعف کل و امتیاز ویژه اکیستا است که می مهانتا استاد حق در قید حیات را در شکل نورانیش ملاقات نموده و با یکدیگر در کالبدهای لطیفشان تماس بگیرند این قابلیت باعث انعقاض عشق لایزال و تفاهمی می شود که هر اکیستی برای مهانتا استاد حق در قید حیات و همراهان خود دارد. کل نیرنجان طور خود را در تمام فحنه گیتی گسترده است آنان که درگیر طرق پرستش و عبادت هستند به واسطه تعریف و تمجید هم نوعانشان احساس تقدس کرده و تصور میکنند که در حال پرستش مقام متعال هستند اما در عمل مشخص میشود که فاصله زیادی به آمودش های واقعی یک دارند آنها خود را مشغول اماکن مقدسه، اصول عقاید و جهانبینی نموده و خویش را در راه از برکردن اوارات مقدس مراسم، آداب و شعائر دینی صرف میکنند چون این پرستشی به خودپسندی منتحی میشود اینها نستوگماد را راضی میکند و نکتی را از مرگ میرهاند عموم مردم همیشه در دایره مرگ و تولد اسیرند اگر کسی خواهان جدایی از این چرخه باشد بایستی خود را بیکم و کاست؟ تسلیم مهانتا استاد حق در غیر حیات نموده و در مکتب او خدمت نماید هیچ مفر گریز دیگری وجود ندارد چه بسیار انسانها ها که صحیفه های خاصی را سرلوحه خود قرار میدهند که هیچ فایده ای برای خلاصی از زندان اعتقادات و احکام زمینی ندارد هیچ صحیفه مقدسی نمیتواند از نظر معنوی به کسی کمک کند این نوشتهجات تکافوی چنین مقصودی را نمی‌کنند. زیر تعالیمی مرده به حساب میآیند. تنها وقف به یگانه فریضه حقیقی است که خیلی بیشتر از کتیبه‌های مکتوب به انسان بهره می‌دهد. آن یافتن استاد حق در قید حیات، تسلیم به وی و عمل به تعالیم اوست. آنان که مکتوبات را جایگزین ماهانتا، استاد حق در قید حیات مینمایند، رهروانی پوشالی هستند. مطمئناً این در مورد همه کسانی که پیرو دوگم دستورالعمل‌های مذاهب هستند نیز مستاق دارد آنها با گرفتار آمدن در این دام، خطاهای زیادی را مرتکب شوند، زیرا از نعمت معلم صادقی که راه به سوی مهانتا را نشان دهد، بی‌بهره بودند و جهل خرافات بر آنها چیره شده است. معلمینی که آنان را نیا که خود را به مهانتا استاد حق در قید حیات گودار و گودار نمایند و مطمئنا چیزی هم در مورد ماهیت حقیقی سودماد نمی دانند و پیروانشان را به ناکجا آباد بردند نظام به اصطلاح الهی، مرام های مذهبی و مکاتب اسرار چیزی در مورد ماهانتا استاد حق در غید حیات نمی دانند و اصلا نمی او که اوچه مسئولیتی دارد آنها برده ی صورت هستند و مقاییت به کتاب ها و متون مقدسه و آداب و سنن می باشند و همین بردگان هم نوعان خیش را نیز به بردگی تشویق میکنند. ایشان جایی در جامعه اک ندارند تنها ماهانتا استاد حق در غیر حیات شایسته تعلیم اک طریق آزادی روح است. حال کسانی که با اعتقاد به حقیقت سوگماد در پی مهانتا می روند اکثریت طالب معجزات و نمایش قدرتهای خارقلاده هستند و به همین دلیل لایق همراهی ماهانتا استاد حق در غیر حیات نیستند چون این درخواستهایی باعث قبض ذهن و جسم کسانی می شود که آنها را خواهانند برکت داده شدگان حقیقی به عظمت ماهانتا و نام مقدس معتقد هستند اهل دنیا جامعه معنوی اکیستها را باور نمی معیارهای ایشان همه بیرونی است آنها به لباسهای فاخر و تعام رنگین میاندیشند. بوت حوت قالب چلاها کلام و دیسکورتهای ماهانتا استاد حق در غید حیات است ایمان به مهانتا سپر چلا و پوشش دهنده رفتار حقیقی جویندگان خالص حقیقت است این راهروان راه دل عاشق چیزهایی هستند که به رغم عالمیان غیر حقیقی و رؤیاگونه است روحانیون و معلمین فاضلنما نوشتجات مقدس خود را پرمغز تر از اک می‌دانند آنها اشتباه فاحشی در هدف معنوی خود مرتکب می‌شوند ایشان برخیت اعضای خیش را قدیس خطاب کردند البته نه اینکه از نظر معنوی رشد نکرده باشند لیکن پیشرفتشان بسیار اندک بوده است آنان نمیدانند حقیقت چیست و اهمیتی برای آن قائل نیستند بلکه فقط به پوشیدن خبقه فاخر و خرامیدن در میان پیروان خود اهمیت می دهند. اینان هیچگاه نمیتوانند با حقیرترین مریدان مهانتا استاد حق در غیر حیات برابری نمایند آنان که تصور میکنند لازمه رشد معنوی تحصیلات عالی است در توهم سیر میکنند البته مدارج بالای تحصیلی به معاش آدمی قوت میبخشند و مسلما معاش لازمه زندگی است و حد چلایی بایستی روی پای خود بایستد و از پرس مسئولیت های خود در این جهان و سایر طوقات درون براید ولی بعید است که به شکوفایی معنوی بیانجامد در این دوره تاریک کالیوگا ماهانتا استاد حق در غیر حیات برای رستگاری ارواح فردی و بر نمودن و شناساندن نقاعث مذاهب به این جهان آمده است او راه مستقیم آزادی را به همه روحها مینمایاند اغلب غریب به تمام مردم به ماهانتا روی نمیآورند ولی متون مقدس را تنها به صرف خواندن و شنیدن میپدیرند خواندن و شنیدن مستلزم تمرینات معنوی نیست مردم با کلام ماهانتا استاد حق در قید حیات بیگانند حالان که در گذشته های دور این تمرینات را فرا گرفتند و فقط بایستی آنها را به یاد آورند چون این تمریناتی را نمیتوان با مطالعه ذهنی کتاب‌ها و آموزشنامه ها فرا گرفت چون این اعمالی فقط مزید بر خود ستایی میگردد و ذهن را هرچه بیشتر آلوده ساخته و بستر تمرینات معنوی را تخریب می نماید. شخص غالباً با کسانی برخورد میکند که تنها حرف تمرینات معنوی را میزنند ولی به آنها عمل نمی کنند جویندگان حقیقی سوگمات بایستی استاد حق در قید حیات را بیابند و در او پناه بجویند. این تنها راه تصویری زهن در عصر آهن است تا زهن صافی نگردد آزادی روح ممکن نخواهد بود فقط مهانتا استاد حق در غیل حیات راه به سوی اقیانوس عشق و لحمت را میشناسد و میتواند تواند را به این منزل نهایی برساند هیچ کس دیگر راز و رمز متعالی اک را نمیشناسد. آزادی از سر فیض او کسب می شود راه دیگری برای ورود به جهانهای خدایی وجود ندارد مهانتا استاد حق در قید حیات تنها وجود جامعه شرایط برای شناساندن طریقت حقیقی خداوند است سایرین همه پیروان خیش را به خرابات گمراهی میکشنند زیرا خودشان هم رهگم کردگان کوی حقیقت هستند منکران گمراه به عوض خدمت به دیگران ایشان را گمراه نمود، هر چند تظاهر به خدمت کنند چگونه ممکن است که کوری اتاکشه وری دیگر شود. به همین جهت خیلی مهم است که ماهانتا را بخواهیم. تا وقتی که او را نیابی، سر درونی راه اگ ناشناخته باقی میماند. ماهانتا کسی است که خود را وقف کلمه خدا نموده است. او سر کلمه را بازگو میکند و مسیر صعود به وحدت ابدی را نشان میدهد. اما آنجا که روح حقیقتا آزاد است، ماهانتا استاد حق در غیر حیات را نمیتوان با تجلیه بیرونیش مورد ارزیابی قرار داد آنکر که دنیا چشم دلش را کور کرده است نمیتواند ماهانتا را آنطور که باید ببیند این استاد است که میتواند به هر طریقی که بخواهد خود را بریشان ظاهر سازد آن است که از ابتدا بدانیم و بفهمیم که او اسرار کالبد و جنبه‌های عملی اکنکار را به چلاها آموزش می‌دهد او در وحدت تام با کلام خداوند به سر می‌برد اگر چلا وی را بیابد مطمئنم توسط ماهانتا استاد حق در غید حیات پذیرفته می‌شود اسرار درونی کالبد را فقط ماهانتا می‌داند و ب و او تنها کسی که از طرف سوگماد صاحب اختیار است تا آن را بگشاید. آید استاد حق در قید حیات برای آموزش وابسته به کتاب و یا نوشته ای نیست او نماینده حقیقی سوگماد و صاحب کلمه است تا زمانی که فرد تمرینات معنوی را که توسط مهانتا و از سر فیض داده می شود انجام ندهد هیچگاه به من که بی اقیانوس عشق و رحمت نمی رسد به غیر از فیض صرف تیرف ماهانتا این قدرت را دارد که یک موجود را به هر راهی که می خواهد آزاد سازد بنابراین ایمان و وقف به او از لوازم ضروری طریق است این حق طبیعی و خداداده اوست که خط سیر تعالیم چلا را طبیعی نماید او کارکردها و افکار درونی چلا را آنقدر خوب میداند که میتواند او را برای کامیابی معنوی در هر جهتی که صلاح بداند راهبری کند اگر عاشق خدا فکر کند که بی مهانتا ماهانتا استاد حق در قید حیات هم میتواند به اقلیم بهشتی وارد گردد در اشتباه است محال است که بدون ماهانتا استاد حق در غیل حیات راه به بهشت های برتر ببرد و عضو انجمن معنوی اکهیست ها شود. حتی این اشتیاق منفرد برای خدا چه بسا در حضور یک آموزگار خام فروکش نموده و میل به یافتن استاد حق در قید حیات هم جوینده خدا توفیقی کسب نمی نمیکند مگر آنکه خود را با قاطعیت و استواری تسلیم محانتا استاد حق در قید حیات نماید به عبارتی همراهی یک آموزگار خام و دروغین فقط سفرای خودپرستی را افزون می و منجر به کجی و شکست خواهد شد. تسلیم به اراده ماهانتا استاد حق در قید حیات واقعا مشکل است اما از اهمیتی حیاتی برای چلاور خود است. خیلی هادم از این میزنند که خود را تسلیم به او کردند اما حالان کس که خیش را با اخلاص کامل به استاد حق در غید حیات سپرده باشد هیچ وجود دیگری را عزیزتر از مهانتا نمی دانند. فقط این چلاها می توانند مدعی شوند که خود را بی و شرط به مهانتا استاد حق در غید حیات سپردند آنان که رمز و راز کلام زنده را می دانند و در خدمت اک مقدس هستند بی نهایت خوشبخت می باشند زیرا همراهی ماهانتا استاد حق در غید حیات و همچنین جامعه اکیست ها در این اصر یوگا واقعا نعمتی عظیم است روحی که در خدمت نباشد در چنگال کل رنجان حاکم جهانهای پایین اسید است کل زندگی میبخشد خلق میکند دوام میدهد و منهدم می سازد او روح را از حقیقتش جدا کرده و در محلکه چرخه های مرگ و تولد مکرر انداخته و با دشمنان زیادی در درون و بیرون مواجهش ساخته است. او روح را در تله شهوت، خشم، تمع، وابستگی و خودستایی انداخته است و به خانواده، دوستان، ثروت، موقعیت و تمامی لذاعز نفسانی جهان وابسته کرده است. از پرستش خدایی که روح را تا بدین حد در آشوب گرفتار کرده چه سود؟ پس آقلانه ترین کار مهور قرار دادن مهانتاست که فقط به لطف او روح می‌تواند از تارهای تنیده شده کل رهیده و نواهی امنیت بهشتی را مال خود نماید سر نام خدا که مهانتا استاد حق در قید حیات می‌تواند از کانال مهدیس به واسلین فاش سازد در هیچ نوشته ای یافت نمی شود فقط کسی که صاحب این نام باشد لقب ماهانتا را می گیرد اشخاص مختلفی که به نظام های درونی تعلق دارند خود را قدیس و اساطیر خطاب می کنند ولی نیستند فقط کسی ماهانتا می شود که از ابتدای زندگی از خردسالی و جوانی و بلوغ توسط اساتید معظم ایک کاندید شده باشد و تحت آموزش قرار گرفته باشد حتی با همه این تمهیدات هم ممکن است قبل از پذیرفتن اطای قدرت ایک از مسیر منحرف شود او علی دوان زیر نظر چشمان تیزبین اساتید ایک است اساتیدی که او را در طول این سالها آموزش دادهاند، اگر او دوچار لغزش شده یا شکست بخورد امکان دارد که از این موقعیت به پایین کشیده شود و اگر چنانچه در اسنای انجام وظیفه از مستر ماهانتا استاد حق در قید حیات در ایفای مسئولیت خود تنزل یابد کنار گذاشته می شود و شخص دیگری جایگاه او را اشغال می کند حجاب خود ستایی برای کسانی که در حال تعالیم استادی در اکاستند مخربترین نفتانیت های کل است. آن بسیار زیرک است. و نیش زهراگین خود را بر دل و ذهن دانش پر وارد می نماید و او بیان که متوجه شود خود ستایی را از خود به نمایش می گذارد دانش پر روحان تعالیم استادی با دقت و رقبت به استاد خود خدمت می کنند چشمان سالک با نظر به ماهانتا استاد حق در غیر حیات برکت داده می شود در چارچوب اکنکار پرستش معلمین معنی ندارد اگر کسی حس کند که بایستی پرستشی سخت و اکید را نسبت به ماهانتا استاد حق در قید حیات یا هر یک از مهدیس ها و یا واصلین حلقه بالا از خود نمایش دهد به بیراه رفته است سودما در ذات خود هرگز از پیروان طریق اک نمیخواهد خواهد که آن را بپرستند. این با تمامی مذاهب مقاطب اسرار و فرقه های, های پایین متفاوت است کل نیرنجان ترستش خود را خواهان است زیرا در ردبنگی اک یک زیردست بیشتر نیست و اتمینان لازم را به خودش ندارد کل از همه انسان ها در هر موقعیتی که باشند تقاضا دارد که عاشق او باشند و او را تکریم کنند از آنجا که دائیه یگانگی دارد خود را شایسته تعظیم و تکریم میداند همه گروه‌های مذهبی که ادعاهایی با این مزامین دارند، پشیزی ارزش ندارند و نمایستی توسط چلا ریسمان وسال به خدا طلب می شوند این باوری است که کل آن را برپا کرده است. یعنی پرستش خودش نه طریق توهمی و بادار نمودن همه به این اعتقاد که وی اعظم وجود هاست و بایستی به او قرنش شود. نژاد بشر بایستی معیار بیرونی داشته باشد تا هرکسی بتواند عاشق پدیده یا اشخاص شود. با استفاده از این نقیصه کل پرستش خود را تسبیت می کند ای این طرز فکر مادی را نمی و هرگز به انجامش توصیه نمی کند آن ایمان و یقین طلب می کند نه ایمانی که باعث انعقاد یک عقیده کور شود و چیزی را آیده چلا نکند اک می‌دهد و می‌گیرد کسانی که به آن وفادار باشند اک نیز تعهد خود را نسبت به ایشان انجام می‌دهد اگر کسی با سکون و اطمینان دل به اک ایمان داشته باشد آن صد برابر به او باز می‌گردانند و اگر چلایی به هر میزان عشق و احترام بدهد هزار برابر آن را می‌گیرد عشق به سودماد در کیفیات بیشماری به سوی چلا باز میگردد. هرگز عشق یک طرف بین عالی و دانی وجود ندارد. مگر در مورد مهانتا استاد حق در غیر حیات که به طور مساوی عاشق بر تمامی مخلوقات، انسانها و وجودهاست او فقط به خاطر آن که آنها عاشق او باشند به ایشان عشق نمیوردن بلکه بدین خاطر است که وجه اصیل آن است او عاشق بر همه چیز است چه او را دوست داشته باشند و چه نداشته باشند هر چیزی که از نظر فرد خوب باشد به همان نحو مهانتا استاد حق در غیر حیات نیز آن را خوب می‌شمارد او نه کسی را از چیزی محروم می‌کند و نه به کسی چیزی می‌دهد که برتر از دیگران است دریافتها یا ها به ظرفیت جذب چلا بستگی دارند اگر به نظر می رسد که استاد چیزی را در جهان مادی قرد کرده است پس او می آن را در طریق دیگری برای مسافرش جانشین سازد برخی را تطور بران است که برای خاطر ماهانتا از همه چیز چشم پوشیدند اما باز هم به مطالعه متون مذهبی ادامه می دهند این درست نیست زیرا آنان هنوز ذهن و حواس خود را نشناختند زمانی که با وثبت های مادی و نفسانی رو در رو می و یا به واسطه قدرت ثروت و موقعیت لغزش پیدا می تازه ذهن فریب خورده خیش را خواهند شناخت در آن زمان متوجه می شوند که ذهن چگونه در برابر انتقاد بی و یا مطالعه کتاب طریق معنویت حقیقی به شدت عکسعمل نشان میدهد این یعنی اینکه ذهن هیچگاه شکست نمیخورد. تنها راه قلبه بر ذهن سستپردگی ماهانتا استاد حق در غید حیات و انجام تمرینات توصیه شده از جانب اوست. بدون اینها شخص نمیتواند ذهن خود را کنترل کرده و به لحاظ معنوی پیشرفت نماید. آهاد انسانها از این هم نادانتر هستند. چون ذهن خود را به نادانان سپردند و در نتیجه آن را هرچه بیشتر آغشته به جهالت می و جالب است که انتظار دارند این گرداب جهل ناجی آنها شود سفقت کاران تحصیل کرده مدعی که این عادت ذاتی ذهن و حواس است که درگیر خشم و سایر لذات مادی شود زیرا روح با گسل معنوی میان خود و حواسش مواجه است. حتی بسیاری از روحانیون برقراری ادالت از طریق خشم و خشونت را به همین گونه توجیه میکنند اما اینها خطاست زیرا این کل است که تلقین میکند تنها خودش میتواند ساختار ذهن را از طریق تحصیل بازسازی نماید او این کار را به بهای ساغت کردن خیش معنیبی انجام میدهد هیچ تفاوتی ما بین یک کشیش و یک آمی که در مکنونات درونی خود آرزوی تحصیل و یا لذات مادی را به بهای اثارت روح در ذهن میپروراند وجود ندارد هر دو در معرض مرگ و تولد مکرر هستند آنها جزای اعمال خودشان را درو می کنند آنان آموزش های والا را نمی‌پویند و از پی اصفای لذات افراتی خود میروند. مشخص شده که چون این اشخاصی در عمل بسیار ناشکیبا بوده و چنانچه مورد انتقاد و بیحرمتی قرار گرفته و یا در حضور خود دیگران را ستوده از خود ببینند خیلی زود از کوره در می‌روند. اینان پر از درد می شوند و به انواع و اقسام تدابیر توسل می تا خواسته هایشان عملی شود و حتی از دیگران نیز برای ارضای خواهش های خود کمک می‌گیرند. صلاح آنان در این است که معلمین دروغین خیش را ترک گویند این معلمین محصول تحصیلات خود هستند و کسانی هستند که حواست خود را بر لغات و کتاب ها تنظیم کردند بایستی مهانتا استاد حق در غیر حیات را بخواهند و خیشتن را به وی تسلیم نمایند هیچ راه دیگری به سرانجام خوش رستگاری نمی کشیش ها نمیتوانند در زمین کسی را آزاد کنند. البته مدعی که مؤسس و ناجی ایشان چنین قدرتی را دارد. اما این احمقانه است، زیرا او دیگر یک استاد زنده نیست. ناجیانی که امروزه در جهان مورد پرستش هستند همه رفتند و در طبقات دیگری وارد شدند. و دوره کمک فردی آنها به توده ها به سر رسیده است. فقط یک استاد حق زنده می تواند به بشریت مساعدت کند. زیرا همکنون در جهان حی و حاضر است و آماده ایثار در این سرا و سرای ماوراء می باشد تنها او می تواند ساقی تشنگان است باشد در حالی که هیچ کشیشی نمی تواند روح کسی را آزاد ساخته و یا اتش معنوی او را فرو نشاند این یک ضرورت است که چلا با دست مدامان شدن ماهانتا استاد حق در قید حیات به خاطر همه چیز در ذهن و کالر خود را قربانی نماید. موشتافان و فرهیختگان علوم مادی مناسب جامعه ماهانتا نیستند زیرا سرشار از صدای خود خودپرستی بوده و به او ایمان نمی آورند. او به همگان آموزش می‌دهد که ببینند و بدانند اما ذهنگرا وابسته به چیزهایی است که از مراجع دیگر شنیده و خوانده است و به خاطر عقل و سر خود مشی خود را بهترین می‌داند. ذهن آنها به سرطان خودستایی مبتلا بوده و افکار و تمایلات حسی آنها را در هم تنیده است. آنها معجزه میخواهند اما ماهانتا استاد حق در قید حیات اهل این گونه نمایش‌ها نیست. عشق بر پایه معجزه بنا نشده. معجزات فقط به جویندگانی که مؤمن و عاشق بر ماهانتا می‌باشند، می, می گردند. این خواستان معجزات را هر زمانی که لازم باشد مشاهده می کنند اما آنها که در آموزش خود جدیت نداشته باشند و فقط آرزومند لذت و شهرت باشند هیچگاه در پر مشاهده معجزات نیستند و حتی مستحق ایستادن در کنار ماهانتا هم نیستند پیروان حقیقی ماهانتا بایستی با چنین اشخاصی شدیدن با ملاحظه و محتاط رفتار نمایند. اهل خاک از مرگ می ترسند زیرا به شدت جذب دنیا شده و به لذات آن چسبیدند اما اکیست ترسی از مرگ ندارد زیرا آگاه است که این دنیا مالامال از درد است و خانه حقیقی او نیست او فقط به عنوان یک مسافر در این جهان زندگی می کند و هم مقام او دیدار کالبد نورانی ماهانتا استاد حق در قید حیات است به همین علت به هنگام مرگ هیچ دردی حس نمی کند. او در طول زندگی به گذر از مرزهای پس از مرگ عادت کرده و قرقه در شعف حضور آاتروپ، کالبد معنوی و نورانی ماهانتا می باشند. در اکنکار حکم و رفت تکلیف وجود ندارد. ماهانتا می ندارد مردم را به زور گرداگرد اک جمع کند. او فقط میخواهد که عقاید نادرست را، به وسیله آموزش های اکنکار به زوداید. انسان برتر کسی که قرنها و در کالورت مختلف به اک بوش فراداده است و یک شکوفای مقبول حاصل نموده باشد به او و به اک ایمان میآورد. اما قالب انسان مدت زیادی طول می‌کشد که تفحص نموده و به این نتیجه برسند که اک تنها طریق به سوی جهان بهشتی است در همان زمان هستند کسانی که او را نفهمند و دست رد بر او میزنند و و را ترک میگویند آنها برده و در درون و بیرون چلیپای مذاهب اسیر می شوند چلای اک بایستی با این بددلان شکیبا باشد و نباید بر این عقیده باشد که همه انسانها و یا خوارج جامعه معنوی اک مجبورند به ماهانتا استاد حق در غیر حیات ایمان بیاورند. خروج این اشخاصی از جامعه اک نفع یا ضرری برای چلا ندارد. آنها خود متحمل شکست میشوند. اگر این شکاکین در گروهها باقی میماندند، به لطف این مجاورت دائمی توسعه یافته و خود را به عنوان پیروان حقیقی اک در تمامیت حیات تثبیت میکردند. این فقط زمان میبرد. و جدل برسر ایمان یا ترک ایمان حاصلی به همراه ندارد وقتی چلا نمی تواند چکل فیزیکی ماهانتا استاد حق در غیر حیات را بفهمد مطمئنن توان پذیرش یا فهم کالبد لطیف آتماساروک یا کالبد روحی ماهانتا را نیز ندارد لازم است که خود را وقف استاد حق در غیر حیات نماید تا به اک اتصاف یابد. اگر کسی از استاد حق در قید حیات روی برکاود و با ادعاهای پوچ و محمل خود را همتراز با استاد و یا حتی بالاتر از او معرفی کرده و ترسدار جمع نماید فقط بر بونه کارمای خود می و در مسیر جهانهای معنوی محکوم به حلاکت می باشد احدی با مهانتا استاد حق در قید حیات برابر نیست و هیچ کس استاد نمی مگر اینکه که قویان توسط مهانتا استاد حق در غیر حیات تعیید شده باشد هر چلایی که بدین گونه مهانتا را ترک نماید و خود را استاد قلمداد نماید و پیرو جمع کند رشد معنوی خود را به مخاطره انداخته است پیروانش نمیدانند که او بر اساس نفس و خودپرستی عمل می کند و رشد معنویش خشکیده است تا زمانی که به سوی مهانتا باز نگردد و در سایه پرنعمت او نیارآمد و طلب بخشش ننماید و تقدیر حیش را به دست او نسپارد پارد شکوفاییش از سر گرفته نمی شود وگرنه زندگی از پی زندگی درگیر بوده و کارما می سازد تا روزی که تشخیص دهد که در کجراه کلنی رنجان افتاده است و به پیدا کردن مهانتا استاد حق در قید حیات به و بار دیگر در مسیر قرار گیرد. کشیش ها و روحانیون این دنیا فقط از سوی کسانی که در اندیشه کمال معنوی نیستند مورد احترام و تمجید قرار میگیرند آنها از افرادی که ایشان را به توی جایگاه حقیقی در بهشتهای معنوی هدایت میکند باخبر نیستند آنها فقط دانشندوزی میکنند و یا به خاطر معاش خود به نظام نامه مذهبی ملحق شدهاند. جوینده حقیقی اک کاری با این قبیل افراد ندارد ممکن است که از نظر بیرونی و با آنها سرکار داشته باشد و حتی از خودش به آنها ایثار کند اما ذهن و دل خود را به آنها نمی سپارند این کردلان همپایه هیچ یک از چلاهای اکنکار نیستند اما اگر با خود صادق باشند می توانند به روشنزمیری برفند و الا فیض حق را از خود سلب می‌نمایند. اگر کسی به نیت ورود به یک بحث بیحاصل، نزد ماهانتا به فقط خودش را کوچک کرده است. ماهانتا صبر و حوصله زیادی در این گونه موارد به خرج می‌دهد، اما چلاهایش معمولا این قrgb ها هم باگذشت نیستند. چلاهای حقیقی گلچین می‌شوند، ولی ریاکاران و ناخالصان خیلی دوام نمیآورند. مهدیف‌ها وافدین حلقه پنجم پاسبانان جهانهای معنوی هستند. آنها بایستی تمام آنهایی که واجد برود به این عوالم خالص هستند را محافظت دهند هیچ واعظ یا کشیشی نمی تواند چون این معنوی والایی مثل مهدیس ها را اشغال کند مهدیس ها بعد از مهانتا تنها کسانی هستند که می تواند آموزش های تفسیر نمایند آنها هر موقع که لازم باشد در جوار مهانتا حاضر شده و او را محافظت میکنند. البته چون این چیزی خیلی به ندرت پیش میآید، اما آنها همیشه در اطراف او حضور دارند تا در صورت لزوم محافظ معنوی او باشند اگر قدرت تنها در اسم سوگماد یا نام اسراریش تعبیه شده بود مطمئناً مورد سوء استفاده رازناشناسان و منکران قرار میگرفت. گرفت واضح است که قدرت فقط کلمه نیست در ملک وجود مهانتا استاد حق در غیر حیات می باشد سعادت من که خود را وقف مهانتا استاد حق در غیر حیات می کنند حتی کسانی که مرتکب اعمال نابخ شده و بدترین کارمه ها را ایجاد می کنند با رجعت به سوی مهانتا مورد عفو و رحمت قرار می گیرند. اما آنان که در ظاهر پاک شده اما در تسلیم حقیقی به مهانتا شکست می‌خورند هیچ فرقی با سخت‌ویران و ظالمین به ماهانتا ندارند منکرانی که فقط به اسم یکم کار معتقدند و انتظار دارند که از ایشان مراقبت نماید و کلام استاد حق در قید حیات را به جد نمیگیرند همواره مجبورند که با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند توصیه‌های شریعت کی سودمات برای همه آنهایی است که برای آزادی خود دست به دامان ماهانتا می شبند. ایشان نمی باید جات را جایگزین ماهانتا استاد حق در قید حیات نمایند مکتوبات دستهای های بی و علف حرف و صوت هستند و قدرت باروری ندارند فقط استاد حق در قید حیات قادر است به مریدانی که او و کلام زنده اش را می پذیرند معنوی بدهد هر کسی که در علوم مذهبی تبخوری یافته باشد نمیتواند جیوان مکتی یا رستگاری معنوی یا آزادی روح را در طی دوره زندگی زمینیش کسب نماید در این دوره پریشانی کاریوگا مهانتا استاد حق در قید حیات کلید رستگاری حقیقی است تمامی کسانی که از دستورات او پیروی میکنند آزاد خواهند شد این فرامین اتوفتی است که از سوی او برای چراهایش در این دوره نازل می شود آنهایی که در صورت او را رد میکنند و خود را درگیر راههای دیگر مینمایند، عیار خود برتربینی وجودشان بالا رفته و نمیتوانند از چرخه زندگی که آنان را چون موش آزمایشگاه در دوری باطل انداخته است بیرون آیند ممکن است از قید پرستش و تعصبات خیش خلاص شوند ولی نمی نمیتوانند از نفس دوزخ thead رهایی آبرند زیرا در غالب موارد پیشوایشان به آنها اجازه رفتن نمیدهند زیرا کوشش هایشان در چنین راههایی چه بسا باعث شکلگیری یک مرام جلید شده و منبع درآمدی برای هسته مؤسسین آن میشود کالبد انسانی فانیست و کمال حماقت است که به زیباییش ببالیم. همچون پاییز برگ ریزان، زیبایی کالبد انسانی هم یک روز محو شود زیبایی از روح است و در مقام مقایسه، زیبایی پیکر انسانی هیچ بویی از جمال معنوی روح نبرده است. اثباتات با مردم بیرون از اک، بیش از اینکه باعث خوشنودی شود، موجد درد است. و به همین دلیل است که کل اکیزتا با یکدیگر در یک جامعه معنوی گرد میآیند. آنها در زندگی خیش به دنبال بهترین هستند و همه چیز را تسلیم می کنند تا مقیم کوی مهانتا استاد حق در قید حیات باشند انسان مبتلا به سه بیماری آشکار و سه آرزه نهان است او امراض آشکار را درمان می کند. اما از این سه بیماری نهان قافل است. فقط موهانتا استاد حق در قید حیات میتواند ناهنجاری های درونی را به چلا به نمویاند. اگر کسی آنقدر بلند اقبال باشد که استادش را بیابد از تمامی بیماریهایش هایش مطلع گشته و راه درمان آنها را میاموزد. اولین از عوارض بیرونی تولد و مرگ دائم است دوم جدال با ذهن است که قدرت کیهانی جهانهای پایین میباشد. سومین آنها جهل مطلق است. آن گواه این مطلب است که هیچ یک از این ها را نمی‌توان با مطالعه صرف کتاب‌ها یا پیروی از یک استاد دروغین برطرف نمود. امراض سگانه درونی عبارتند از خودپسندی، خشم و شهوت. این هم گواه آن است که هیچیک از آنها را نیز نمیتوان به اتکاء کتاب یا پیروی از زیرمجموعه های نوشتجات مقدس و مذهبی برطرف نمود تنها ماهانتا استاد حق در قید حیات است که میتواند شفای عاجل تمامی این امراض انسانی را هم در درون و هم در بیرون منعقد سازد فقط آنانی که طالب تعالی در دامان سودماد هستند از اثبات خود با جامعه معنوی یا جهانهای بالا آگاهی نیابند اینان از همان دم که از مجرای حضور مهانتا استاد حق در قید حیات جویای اک می‌شوند، جاودانه گشتند